شکارچی دانش آموز. روزی بود و روزگاری بود. در زمان قدیم یک شکارچی بود که گاهی در بیابان کبکها و کبوترهای صحرایی را شکار میکرد، و گاهی هم در کنار دریا ماهی سید می کرد و با این کار زندگی خود و زن و بچه را روبراه می کرد یک روز این آقای شکارچی در گوشه ای از بیابان کنار یک تپه، یک مشت، گندم و برنج و ارزن پاشیده بود و منتظر بود که کبوترهایی که در آن نزدیکی دانه بر می چینند به دام او بیفتند پس از انتظار زیاد، که ستا از کبوترها به دام نزدیک شده بودند ناگهان شکارچی از پشت سر خود صدای داد و فریاد دو نفر را شنید که داشتند نزدیک می شدند و با صدای بلند با هم گفتگو می کردند شکارچی از ترس اینکه کبوترها رم کنند و به دام نگفتند زود خود را به آن دو نفر رساند و گفت دوستان به خاطر خدا در اینجا داد و فریاد نکنید تا مرخ های من نترسند و فرار نکنند آن دو نفر که طلبه بودند گفتند ما با کسی کاری نداریم ما داریم در یک ای که در آن اختلاف داریم گفتگو و بحث میکنیم اینجا هم بیابان خداست و بلند حرف زدن آزاد است اینجا که بچه کسی نخابیده که بیدار شود یا آدم مریض به سری نیست که ناراحت شود شکارچی گفت، آخر من اینجا دام گذاشتم و میخواهم کبوتر بگیرم و اینها از سر و صدای شما میترسند و فرار میکنند ولی اگر ساکت باشید ممکن است به دام بیفتند. طلبه ها جواب دادند، تو میگویی ما از کار خودمان دست برداریم تا تو به کار خودت برسی؟ در این صورت اگر تو حاضر هستی دو تا کبوتر هم به ما بدهی ساکت می شویم وگرنه هر کسی باید به کار خودش برسد و اینجا جای درس خواندن ماست می توانی بروی دام خود را جای دیگر پهن کنی سیاد گفت آقا آقایان عزیز آخر من کاسب هستم و چند نفر نانخور دارم و باید با فروش این مرغ ها زندگی کنم و از صبح تا حالا انتظار کشیده تا حالا که سه کبوتر آمده نزدیک تله و دانه بر می چینند و ممکن است به دام بیفتند و اگر دوتا را شما ببرید و یکی بماند برای من نان نمی شود آن دو نفر جواب دادند تو هر روز این کار را میکنی و ما مدت هاست گوشت شکار نخورده ایم و چون گوشت کبوتر در مدرسه ما خیلی کم است بعد ما نمیآید امروز گوشت کبوتر بخوریم و به دوستان خود در مدرسه نیز مهمانی بدهیم سیاد گفت آخر این مرغان که کبوتران مدرسه نیستند من چه کار کنم؟ اما هر هرچه شکارچی اصرار کرد به گوش آنها نرفت که نرفت و گفتند یا باید قبول کنی که دو کبوتر هم به ما بدهی تا ساکت شویم یا ما هم به کار خودمان مشغول می شویم و اگر مرغها پریدند به ما مربوط نیست تو هم حق نداری برای درس خواندن و بحث کردن ما مزاحم بشوی سیاد گفت حالا که اینطور است پس برای اینکه من راضی باشم و کبوترها بر شما حلال باشد باید عوض دو کبوتر که می دهم شما هم آن درسی را که دارید می‌خوانید و بر سر آن گفتگو داشتید به من یاد بدهید و همه قبول کردند و ساکت شدند و آن سه کبوتر هم در دام افتادند بعد از آنکه که صياد کبوترها را گرفت به ها گفت من به قول خود وفا می‌کنم این دو کبوتر مال شما آن یکی هم مال من حالا شما هم به قول خودتان وفا کنید و درسی را که بر سر آن گفتگو داشتید به من یاد بدهید آنها گفتند حاضریم ولی ای باشین است که تو سواد نداری و نمیتوانی مسئله را درست بفهمی تازه اگر هم بفهمی انسان باید سالها برود درس بخواند تا یک چیزی که به درد زندگی بخورد یاد بگیرد و بر فرض که تو یک کلمه یاد گرفتی این برای تو علم و دانش نمی شود و از آن نان و آب در نمیآید. شکارچی جواب داد خب سواد ندارم به جای خود ولی این را میدانم که هیچ کس همه چیز را در یک روز یاد نمیگیرد. علم و دانش کم کم به دست می آید و هر ای که انسان می آموزد و هر درسی که می همان یک کلمه و یک درس هم روزی در زندگی به کارش می ها گفتند بسیار خوب. آفرین بر آدم چیز فرح. حالا که اینطور طور است گوش بده. آن چیزی که ما بر سر آن بحث می کردیم کلمه خونساب. خونسا یعنی انسان و حیوانی که نه نر باشد و نه ماده باشد و گفتگوی ما از این بود که یک آدم خونسا مطابق اصول مذهبی چگونه ارث میبرد و هنوز گفتگو داشتیم که تو ما را ساکت کردی شکارچی گفت بسیار خوب از اینکه همین یک کلمه خنسا را یاد گرفتم از دادن دو کبوتر راضی هستم و خدا حافظی کردند و رفتند آن روز گذشت و روز بعد شکارچی برای سید ماهی به کنار دریا رفت و تور ماهیگیری را در آب انداخت و بند آن را گرفت و تا ظهر منتظر نشست و هیچ ماهی در آن نیفتاد وقتی خسته شده بود و میخواست دست خالی برگردد ناگهان یک شاه ماهی، یک ماهی خوش رنگ و زیبا که در عمر خود مثل آن را ندیده بود در تور افتاد از بس زیبا بود آن را زنده زنده در ظرفی که راه داشت به خانه آورد در راه هی آن را نگاه می کرد و با خود می گفت ببین دست قدرت خداوند چه موجود زریف و زیبایی به وجود آورده و در رنگ آن چه رنگهای عجیبی به کار برده این ماهی در پشت گردن و سینه و پهلو دارای رنگهای گوناگون سفید و سیاه بود و فرسهای ای رنگ داشت بالهای زیر شکمش طلایی رنگ بود و دوم آن جلوه دیگری داشت و انسان تعجب میکرد که چگونه در آب دریا این همه رنگهای دلفریب نقاشی شده است وقتی شکارچی به خانه رسید، زن خود را صدا کرد و گفت امروز ماهی گیر نیامد و نیامد، اما بیا ببین که آخر چه ماهی خوشگلی به تورم افتاد زن سیاد انگشت تعجب به دندان گرفت و از دیدار آن ماهی زیبا فریاد شادی کشید و به شوهر گفت من هم در عمر خود چنین ماهی زیبایی ندیده ام و حیف است که این ماهی به مصرف خوراک برسد یا در بازار فروخته شود. خوب است این را بنوان هدیه برای حوض مرمری که تازه در قصر پادشاه ساختند ببری و با این خدمت نام خود را در میان همکاران بلند آوازه سازی سیاد گفت ای زن گل گفتی گل گفتی و زیبا گفتی که هدیه شایسته است بعد ماهی را در ظرف آب پاکیزهی انداخت و رو به قصر پادشاه روان شد وقتی رسید که تازه در حوز آب انداخته بودند و چند ماهی زیبا در آن انداخته و برای جلوه و صفای حوز یک کشتی کوچک جواهر نشان هم روی آب شناور کرده بودند و پادشاه و وزیران مشغول بازید ساختمان حوض بودند کشتی کوچک روی آب چرخ می زد و ماهی ها در آن آب روی سنگ های رنگارنگ جلوه می فروختند. سیاد رسید و هدیه خود را تقدیم کرد و چون آن را در انداختند از تمام ماهی ها زیباتر بود پادشاه از زیدار آن ماهی خوشحال شد و دستور داد هزار سکه طلا به سیاد پاداش بدهند یکی از نزدیکان پادشاه که وزیری حسابگر بود از این جایزه بزرگ تعجب کرد و آهسته به پادشاه گفت قربان سیاد با گرفتن صد سکه هم خوشحال می شود و این پاداش برای یک ماهی خیلی زیاد است چرا که دریا پر از ماهی است و ماهیگیرها بسیارند و اگرچه بخشش کار پسندیده است ولی اسراف و خرج زیاد به خزانه زیان میرساند و دیگران هم در طمع میفتند. پادشاه جواب داد حالا گذشته است من به او هزار سکه وعده کردم و در جلوی حاضران صلاح نیست به قول خود وفا نکنم وزیر بخیل جواب داد ممکن است حیلهی به کار ببریم که وعده خلافی نشود از شکارچی میپرسیم که این ماهی نرست یا ماده اگر گفت نرست میگوییم ماده را بیاور و اگر گفت ماده است میگوییم نرش را بیاور و هزار سکه را بگیر و چون دیگر نمیتواند مانند این ماهی را پیدا کند شرمنده می شود بعد به جای هزار سکه صد سکه پاداش می دهیم و او هم راضی و خوشحال بر می پادشاه سکوت کرد و سیاد پرسید خب آقای سیاد این ماهی که آورده نر است یا ماده است؟ پیر سیاد که مردی تجربه دیده و باهوش بود از گفتگوی آهسته وزیر با پادشاه در فکر افتاده بود که آیا درباره‌ی من چه صحبتی می کنند و حالا در برابر این پرسش نمیدانست چه بگوید ناگهان حرف طلبه دیروز به خاطرش رسید و با خود گفت خوب یاد گرفته‌ام و جواب داد قربان این ماهی نه ماده است و نه نرست بلکه خونسا است همه حاضران از این حرف به خند افتادند پادشاه نیز از حاضر جوابی شکارچی خوشش آمد و فرمود حالا که چنین است، پس دو هزار سکه به سیاد بدهید سیاد انعام خود را گرفت و خرم و خوشحال به خانه برگشت و با خود گفت راست گفتهاند که یاد گرفتن هر چیزی روزی به کار می آید اگرچه یک درس یا یک کلمه باشد